سلام عرض میکنم خدمت شنومدنگ و نزیز. من شریفی هستم. به این قسمت از پادکست حقوق من خوش آمدید. در این قسمت استلاح انفساخ قرارداد رو توضیح خواهیم داد. خب وقتی عباراتی رو در یک قرارداد میبینیم که باش ناشناه هستیم، بهتر از قبل از آن که آن قرارداد رو امزا کنیم، حتما از یک متخصص حقوقی کمک بگیریم. چرا که ملاحظه شده است که بدون آن که مطمئن قرارداد رو بخانند اقدام به امزای آن کردند و بعد که اتفاقی روی داده تازه متوجه می شوند که معنای یک اسطلاحی که به کار رفته است چه بوده است. در اینجا یک مثال می‌زنم که کاملاً موضوع مشخص بشه. وقت در یک قرارداد فروش یک آپارتمان زک می‌شود که اگر یکی از چک‌های خریدار نقد نشود، قرارداد منفی شد. این یعنی چه؟ این یعنی آنکه ببینید که لازم باشد اتفاق دیگری بیفتد به محض آنکه یکی از چک‌ها لازم نیست چک اول باشد یا چک آخر. مواجه با برگشت بشه و آن قرار داد خود به خود از بین می ره. بذار یعنی دیگر مثل موضوع حق فسق نیست که توضیح دادیم پس دقیق داشته باشیم. که اگر ابزار یا کلماتی را در یک قرارداد متقاضی نمی‌شوییم، حتماً از یک متخصص حقوقی کمک بگیریم. اگر ما ندانیم که معناهای این استلالچیز یعنی این فساق قرارداد و موزرو بشوخی برگزار کنیم یا با خودمون بگیم خب حالا چه که ما امروز فردا نقدش فردان نقدش می‌کنیم یا نه پنج روز بعد نقدش می‌کنیم و اصلاً خسارت هم به فروشندگی می‌دهیم. مثلاً می‌گویم گری چقدر یک میلیارد بود ماستم به شما یک میلیارد و سه نه اگر چنین باره تیامده باشد دیگر قراردادی وجود ندارد. تو شما بخوایید نسبت به ادامه پرداختها اقدام بکنید، آن قرارداد دیگر از بین رفته است. یعنی به محض اینکه چه که شما عدد پرداخت رو برو بشود، این قرار داد بدون این که نیاز به هیچ کار اضافه ای باشد، منفسخ می شود، یعنی از بین می رود. و نتیجه ها نست که هر پولی که تا آن لحظه داده اید به فروشنده به شما بر می گردد و مالکیت آن آپارتمان هم، آن ملک هم به در واقع فروشنده باز می گردد. به عبارت دیگر انگار هیچ اتفاقی روی نداده است.